با توجه به اینکه مقام معظم رهبری خواستار تحول در آموزش و پرورشند در جهت تربیت اسلامی دانش آموزان اگر طلبه توانایی گذاری در این جهت در آموزش پرورش داشت دارد آیا جایز است مقداری از وقت خود را مثلا یکی دو ساعت در روز برای این کار بگذارد نه درس بخون بعد ان شاءالله اینا مال بعد درسارو میری بیسوادوار میای وایسا میروننت میخوان بره بعد اونجا حرف بزنی جواب بدی درس حد تکلیف ما در قبال انحرافات اخلاقی دبیرستان ها و مدارس راهنمایی چقدر؟ و اندازه که میتونی بیشتر از اونه. اون اندازه هم که منافات با درس نداشته باشه؟ وزیفهش درس نده. اول وظیفه خودم باید انجام بدید از اون اضافهش بده به دیگران. ولی خودم خراب بشه، خانی هم با دیگران انجام. بده.